مدل در اول کتاب دعای ها اسلام که تحریف و قاضی نومانه مثلی و در هر چهاران نمیدگی در مصر و این کتاب را برای سلطان و امیر اسماعیی ها امیر اسماعییه در مصر نبشت دعای اسلام خب خیلی از ما شما شیعی میگن در تحریقی ها نمیدگی میکرده هر آدین یک تو ازول هر حدیث که اون روبینا داره اونجا چی تو مستحلی کتابی در مصر استکیره هم بوده به این کتاب تسکیر کرده از دو چیه؟ میگه من از محمد، فعاد از دول واقی همساعد کردم که این چی بخونیم؟ این را رو روینا بخونیم؟ روبینا بخونیم؟ روبینا بخونیم؟ رو بعد میگه فعاد از دول واقی به من گفت که باید روبینا روبینا در روبینا تردید داشته باشید در کتاب های ما هم الان در عمالی شیخ مفید هم روبینا هست در عمالی توسی هم روبینا هست روبینا یعنی که روبینا مجروم از ربینا ربی کل استاده از حدیثه دومتونی یعنی من بادار کردم استاد را که داریم اون حدیثه دارم در جایی که تلامیز میان خدمت استاد و از استاز طوازای املاع حدیث میکنن قدید میگن ربه اینا ربه تو ما از اون او را بادار کردیم برای ما حدیث بگه و حدیث رو از نوشتیم حالا ربه که کلو استاز اله که دو محبولی هست قایدی من کردن چیه در بیر سبتونی دیگه فایر رو را حرصت میکنیم مفعول اول به فاقه فاعل شد میشه مفعول دوم هم بسر جاش مثلا رفوی طلح استاذه میشه ربی ربی رفوی ال استاذه بایه میشه استاد ما روی پایه ما روی اسم تون قسم ظاهر دا بایه برگیدی میشه رفوی ال استاذه در این عبارت قاضی نومانه و کتابهای های حدیثی ربینا ال استاذه حدیثه بوده بعد مجموعه چی شده ربینا ربینا بنو مثلا بعضو کلامیز میگن کلامیز এবاره چینی بوده رد و کلامیز و رد بنو بنو که استفاده بوده آسیب شده ناکه مطبولی رو از میده و تقدیر زمین متکلم مطبولی شده و نایز باهید شده رفتی اینها علا این گدایش دیجون که همی که تا رسولی ابو خانم محمد غزالی رو تسکیجر در منحوم تقریبات رسول همیزه آینا اصلاح خب؟ را بعد ها من دیدم علامه مجلسی رحمت الله علی مدارتهای ایزایش قدوییدن در برح انبار که دزوی ممثل به تویداد تیر روبینا بکنیم درقی من ه که من م مع من در آننا که م اونه اعضاین نش سی گفتن و الا مح خو به با یه ترصی نمی میگه ال رو چی گفت روبینا بمانید ولی نمیگه که چطور روبینا بمانید؟ اونکس کافی و و کافی میکنه در؟ کال با رو بینا چی کافی شده یک خود که ایسی میرن الله و بینه شده روبینا چی معنی میشه؟ ها روبینا یعنی شدیم به نمبل رقافت آ ما بله یعنی شاگردان آمدن پیش ما به تقاظای در حقیقت این روینا نیست اون خیلی از با ما یا باید باید کمی که از دسته یعنی روایت شدید نه روایت شدید نید رو یعنی ما داریم روایت می کنید آمدن تقاضا کردن و ما داریم روایت رو نهاری می کنید